ساقیمه می خشک و بار بر دستم نه وان بادیه چون نگار بر دستم نه آن می که چوزنجیر زنجیر به به هم دیوانه و هوشیار بر دستم نه فریاد که رفت عمر بر بیهوده هم لقمه حرام و هم نفس آلوده بر موده ناکرده سیاهرویم کرد فریاد های نافرموده من توبه کنم از همه چیز از می نه که از جمله گریز باشدم از نه اما با که من مسلمان گردم، وینتر تر که می مقانه گویم هی نه. ما این به لطف تو تبلا کرده، و ساعت و معصیت تبره کرده، آنجا که انایت تو باشد باشد، نا کرده چو کرده کرده چون نا کرده.